توی این سرزمین پهناور یه پادشاه مقتدر و عاقل حکومت میکرد. اون به سن هفتاد سالگی رسیده بود ولی هیچ جانشینی نداشت و این نگرانی باعث ناراحتی شدید اون شده بود. شاه با ناامیدی غصه خودش رو توی یکی از اتاقای قصرش محبوس کرد. نه کسی رو میدید و نه با کسی حرف میزد. توی قلم رو اون اوزها کم کم داشت وخیم میشد میشد. آخه اون دیگه برای اداره اونجا دخالتی نداشت. وزیر اعظم برخلاف دستور اکید شاه به داخل اتاق پادشاه رفت و با اجزهل تماس از اون خواست تا به این گوش نشینی پایان بده و حداقل به فکر خوشبختی مردم باشه. پادشاه به وزیر اعظم گفت این مرد نجیب با وجود این که قلم رو وسیعه و ثروتم هم بیاندازه، اصلا خوشحال نیستم. آخه من پسری ندارم تا بعد از مرگم وارث تاج و تختم باشه. وزیر اعظم به پادشاه قول داد که در این مورد خوب فکر کنه و یه راه چارهی پیدا کنه. بعد منجم ها رو از اطراف قلمروش فراخوند و به اونها دستور داد تا ستاره پادشاه رو خوب مطالعه کنن و بتونن یه راهی پیدا کنن تا پادشاه صاحبهی پسر بشه. منجم ها بعد از مطالعه ستاره پادشاه گفتن اگه شاه با دختر پادشاه قلمرو رو و همسایه ازدواج کنه صاحبهی پسر میشه. پادشاه که از این بینی بی نهایت خوشحال شده بود، یه پیک رو با هدایای زیاد برای پادشاه همسایه فرستاد و دخترش رو از اون خواستگاری کرد. شاه هدایا رو گرفت و قبول کرد که دخترش رو به پادشاه بده. و بعد مراسم عقد و ازدواج به بهترین نحو برگزار شد و عروس خانم به قلمرو پادشاه آورده شد. چند روز بعد عروس جوون از پادشاه خواست که بهترین دوستش یعنی دختر وزیر را هم به اونجا بیاره پادشاه موافقت کرد بعد هم اون دختر با وزیر اعظم ازدواج کرد بعد از گذشتن چند سال هم شاهزاده خانم و هم دوستش باردار شدن و هر کدوم پسری به دنیا آوردن. پادشاه اسم پسرش رو ملک و وزیر اعظم اسم پسرش رو سعید گذاشت. هر دو پسر در نهایت دقت و با یاد گرفتن بهترین آداب بزرگ شدند. پسرها که حالا به مرز 16 سالگی رسیده بودند هر دو به خدمت پادشاه فراخونده شدند. پادشاه به پسرش انگشتری را که متعلق به اجدادش بود به اضافه یه ردا داد و به پسر وزیر اعظم یه اسب و یه پارشای توری داد. وقتی که شب شد شاصده توی اتاق خودش ردایی رو که پدر به اون داده بود و تا شده بود باز کرد و در کمال تعجب وسط اون یه دختر زیبا رو دید. کرد دستهای دختر رو بگیره ولی دختر ناپدید شد. اون بعد از اینکه دستهاش رو از روی ردا برداشت، دختر زیبا دوباره ظاهر شد. دوباره سعی کرد اون رو بگیره و دختر دوباره ناپدید شد. همین موقع بود که پسر پادشاه متقایش شد که یه سهر و جادوی توی این ردا هست. بنابراین اون رو تا کرد و کنار تختش گذاشت. شاهزاده تمام اون شب رو توی خواب و بیداری به سر برد آخه تا صبح اون خواب اون دختر افزونگر رو میدید. روز بعد شاه زاده خودش رو توی اتاقش حفظ کرد و دست به قضا نزد. این کار اون چند روز ادامه پیدا کرد. پادشاه که خبر این کار عجیبی پسرش رو شنید سریع به طرف اتاقش رفت و دید که پسرش داره زار زار گریه میکنه پدر دست نوازشی روی سر پسرش کشید و با محبت از اون دلیل این کارش رو پرسید. ولی شاهزاده جوابی نداد. پادشاه دوباره غمگین شد. پادشاه دنبال حکیم فرستاد. ولی هیچ کس نتونست درد این شاهزاده عاشق رو درمون کنه. بلاخره وزیر اعظم پیشنهاد کرد که پسر اون بره و علت غم و قصه شاهزاده رو از زیر زبونش بیرون بکشه. سعید پیش شاهزاده ملک رفت و به اون انتماس کرد که راز دلش رو با اون میون بذاره. شاهزاده قضیه اون دختر زیبا رو که از داخل ردا بیرون اومده بود و از دستش فرار کرده بود رو برای سعید تعریف کرد. خبر این داستان که دل شاهزاده را دیده بود به گوش پادشاه رسید. شاه گفت اون زمان وقتی که 16 ساله بودم یه روز روی تخت نشسته بودم که یه هو رعد و برقی پیش چشمه درخشید و بعد چند تا پری دورم حلقه زدان و اون ردا و اون انگشتر رو به من دادن. اونها گفتند که انگشتر و ردا متعلق به شاه سلیمان بوده وقتی پریها ردا رو باز کردن یه دختر زیبا از داخل اون بیرون اومد پریها اون رو حسانا را صدا میزدن و میگفتند که دختر شاه هاست. من اون زمان خیلی سعی کردم که پدر دختر رو پیدا کنم ولی موفق نشدم حالا باید این کار رو بکنم پریخام می گفتن که پدر پری توی سرزمینی به اسم آرات حکومت میکنه. پادشاه پیک هایی رو از هر طرف برای پیدا کردن آرات فرستاد ولی اونها هیچ کدوم نتونستند اونجا رو پیدا کنند. البته مردان پادشاه به تمام گوش و کنار این کره خاکی برای پیدا کردن آرات رفتند. ولی موفق نشدند. شاهزاده تصمیم گرفت خودش دنبال آرات بگرده و حسانه را رو پیدا کنه. پس کشتیهایی رو پر از وسایل راحتی و چیزای ای که لازم داشتن تهیه کردن و آماده حرکت شدن. یک کشتی مخصوص سعید و شاهزاده بود و دوتای دیگه هم حامل اشرافزادگان و بزرگان قوم. بعد از یه سفر دریایی دو ماهه کشتی های شاهزاده به بنادر چین رسیدند. حکم چین برای پیبردن به علت سفر اونها پیکی رو به سمت اونها فرستاد. شاهزاده به اون گفت دنبال یه محل به اسم آرات هستید. پادشاه چین با احترام کامل به اونها خشومت گفت و برای کمک به اونها قول داد. پادشاه درباره آرات از همه دانشمنداش سوال کرد. نجیب زاده موسنی گفت در کودکی درباره این محل یه ای چیزهایی شنیدم. فقط این رو میدونم که برای رفتن از اینجا تا اون محل یه ماه طول میکشه. وقتی که شاهصناده این رو شنید به شاه چین ارزه ادب کرد و بلافاصله به سفرش ادامه داد. سفر دوی بنادر چین با یه توفان صحبگین همراه بود. طوری که کشری اونها تاب نیاورد و تیکه تیکه شد. ولی شاهزاده با چند تن از همراه های شجاعش و با استفاده از کلک چوبی با تحمل سختی های زیاد روی آب جلو رفتن و رفتن تا به ساحل رسیدن. اونها بعد از چند روز سرگردانی به یه شهر سیاه نشین رسیدن. اتباقا اون شهر محل استقرار آدم بود که شاهزاده و همراهانش رو به اصارت گرفتن و پیش رئیس قبیله بردن. رئیس دستور داد که گوشت اونها رو کباب کنن و یه جشن بزرگ برپا کنن. موقع بردن اونها به غربانگاه اتفاقاً دختر رئیس قبیله چشمش به شاهزاده ایزی با افتاد. تصمیم گرفت که اون رو نجات بده. اون با التماس از پدرش خواست تا شاهزاده رو عفو کنه و اجازه بده اون با شاهزاده عروسی کنه. رئیس قبیله موافقت کرد و به مردان قبیله دستور داد که ترتیب ازدواج دخترش با شاهزاده رو بدن دختر رئیس قبیله دختر زشتی بود. شاهزاده اول فکر کرد که مردن بهتر از ازدواج با این دختر زشت روئه ولی بعدا قبول کرد بعد از غروب آفتاب وقتی دختر رئیس قبیله وارد چادر شاهزاده شد داماد سعی کرد فرار کنه این کار شاهزاده اونقدر دخترک رو عصبانی کرد که اونو همراهانش رو به زنجیر کشید و به زندان انداخت اما زندانیها برای فرار نقشه کشیدن تصمیم گرفتن یه تونل بزرگ رو حفر کنند. بعد از یه ماه تلاش سرسختانه و پنهونی تونل آماده شد حالا راه زندانی ها برای فرار به طرف ساحل باز شده بود اونها بعد از رسیدن به ساحل با عجل بادبان ها رو کشیدن و مقصد بعدی اونها ساحلی پر از میوه های تازه بود خیلی از همراهان به جون میوه ها افتادن. ولی شاهزاده از روی احتیاط اصلا به میوه ها دست نزد و در نتیجه کسانی که میوه خورده بودن افتادن و مردن. ولی شاهزاده جون سالم به در حالا شاهزاده تک و تنها و غمگین شروع به پرس زدن کرد. توی این موقع صدای وحشت قطع از اینکه که بتونه فرار کنه و یه سرپناهی پیدا کنه یه اوغاب بزرگ با پنجهاش اون را گرفت و به طرف لونش پرواز کرد. لونه اوغاب نکه درخت بزرگی بود. اوغاب به محض رسیدن به لونه برای شام خوردن آماده شد. که ناگهان یه مار بزرگ به اوغاب حمله کرد. اوغاب سعی کرد که از دست مار فرار کنه. ولی ای نداشت و به این جنگ وحشتناک با پیروزی مار پایان پیدا کرد و مار اون رو ذره ذره بلعید. بعد از گذشتن مدتی مار هم از درخت پایین رفت. شاهزاده که از این خطر هم جون سالم به دربورد شکر گذاری کرد. از درخت پایین اومد و شروع به دویدن کرد. بعد از طی کردن ای مسافت طولانی به یه قصر رسید که شیری توی خواب از اونجا محافظت میکرد. شاهزاده سریع شمشیرش رو بیرون کشید و سر شیر رو دو شقه کرد و وارد قصر بزرگ شد. خوب که توی اونجا رو گشت به ای اتاق بزرگ و وسط اون تختی رو دید که با تلاو و جواهر تزین شده بود. سعی کرد اون رو برداره ولی متوجه شد که یه دختر زیبا روی اون خوابیده. نزدیک تر که اومد در کمال تعجب دید که این همون دختریه که از ردای شاه سلیمان خارج شده بود. توی همین لحظه زیبای خفته بیدار شد و پرسید این دیبه قریبه تو کی هستی و چطوری به خودت جرأت دادی که داخل قصر بشی. شاهزاده خودش رو معرفی کرد و گفت از یه راه دور برای پیدا کردن آرات اومدم و از دختر اسم و رسمش رو پرسید و اینکه چرا خواب بوده دخترک جواب داد اسمم ملک است شاهزاده هستم که با زور توسط دیو به اینجا آورده شدم دیو قصد داره که با من ازدواج کنه از وقتی که دیو من رو روی این تخت گذاشته همیشه توی خوابم. هر روز صبح دیو من رو بیدار میکنه و به من قصا میده. شاهزاده هم داستان خودش رو تعریف کرد و به اون گفت من هم چند ماهه که برای پیدا کردن یه پری راه زیادی رو اومدم. شاهزاده خانوم ملکه از شنیدن این سرگذشت خیلی حیجان زده شد و به اون گفت دختری که اون رو میخوای و دنبالش میگردی خواهر دو قلوی منه. بعد به شاهزاده قول داد که اگه اون رو از دست دیو نجات بده جایزش ازدواج با خواهر اونه. شاهزاده خیلی فکر کرد و نقشه های زیادی برای فرار دختر کشید. ولی هیچ کدوم از اونها عملی به نظر نمیومدند تنها راهی که اون رو به مقصودش میرسوند شکستن شیشه عمر دیو بود. آخه هر دیوی یه شیشه ای عمر داره ولی شاهزاده نمیدونست که شیشه ای عمر دیو کجاست؟ به ملکه گفت: باید از دیو بپرسی که شیشه ای عمرش رو کجا قایم کرده؟ اگه این رو بفهمی حتما از شر دیو خلاص میشی. ملکه قبول کرد که این نقشه عملیه به شاهزاده گفت: چیزی به طولو خورشید نمونده؟ دیو به زودی برمی کرده. پس از اینجا برو و غروب برگرد. شاهزاده از اونجا رفت و ملکه دوباره به یه خواب عمیق رفت. عصر اون روز وقتی شاهزاده برای ملاقات ملکه برگشت دید که اون روی تخت طلایی خوابیده. شاهزاده دختر رو بیدار کرد. دخترک با خوشحالی زیاد گفت: فهمیدم که شیشه عمر دیو کجاست. شیشه توی یه جابه یه در بسته هست و جهبه زیر درخت اون طرف رودخونه زیر خاک دفن شده. دیو فکر میکنه که هیچ کس نمیتونه به جهبه برسه. مگه اینکه حلقه سلیمان رو داشته باشه. شازداله خوشحال شد. آخر اون حلقهی رو که قادر بود اون رو به اون طرف رودخونه ببره و به جهبه برسونه در اختیار داشت. بلافاصله فاصله حرکت کرد و فورند رخت رو پیدا کرد. زمین رو کند و جعبه رو بیرون آورد. در اون رو باز کرد. توی جعبه شیشه عمر دیر و مقداری جواهر بود. شاهزاده شیشه رو شکست و جواهرات رو برداشت و برگشت. ملکه رو منتظر خودش دید. هر دو از قصد که ملکه توی اون زندانی بود بیرون اومدن. توی بندر سوار کشتی کوچیکی شدند که توی اونجا لنگر انداخته بود. اونها وقتی به سواحل آرات رسیدن، شاهزاده کشتی رو ترک کرد و به تنهایی به شهر رفت و دید که شهر توی غم و غصه فرو رفته. پیرمردی که اتفاقی از بازار شهر میگذشت به شاهزاده گفت: دختر پادشاه آرات ملکه موقع وقوع یک گردپاد توسط یک شخص از اونجا دزدیده شده. و همه تلاشها برای پیدا کردن اون بینتیجه مونده. شاه که فکر میکنه اون مرده برای یه مدتی توی تمام قلمرو رو آرات اعای عمومی اعلام کرده. شاه ساده بیکششی برگشت و قضیه رو برای ملکه تعریف کرد. شاهزاده خانوم همراه با شعزاده به طرف شهر رفتن و تقاضای دیدار با وزیر دربار آرات رو کردن. اون پیغامی به وزیر فرستاد که امروز دیگه من توی شهر خودم یه قریبم دارم دارم قصرهایی توی ساحل دریا می سازم. وقتی که وزیر این پیغام رو شنید یه پیک رو به دنبال قریب فرستاد. اول شاهزاده وارد قصر شد و به تنهایی با وزیر ملاقات کرد. وزیر نامونشونش رو پرسید. شاهزاده گفت فرزنده یه پادشاه توی یه منطقه بسیار دور هستم و سختی های سفر من رو به این روز انداخته. اون تمام حوادث سفرش رو برای وزیر تعریف کرد و در آخر به اون گفت من شاهزاده خانوم گمشده رو با خودم اووردم. وزیر در نهایت خوشحالی همراه شاهزاده به ملاقات شاهزاده خانم رفت. بعد اونها رو توی خونه خودش جا داد. جشنهای های و به انداخت. اما وزیر این خبر شادی بخش رو به این زودی برای پادشاه فاش نکرد. چند روز بعد اون شاهزاده رو برای شکار با خودش برد. داشتن دنبال شکار میگشتن که به اعماق جنگن رسیدن و اونجا از هم جدا شدن. شاهزاده داشت دنبال همراهش میگشت که هیزم شکنی دید. وقتی که فهمید هیزم شکن دوست گم شدهش سعیده خوشحالیش نهایت نداشت. اون دو دوست همدیگه رو محکم در آغوش گرفتن و داستانهاشون رو برای هم تعریف کردند. از طرف دیگه وقتی که وزیر همراهش رو گم کرد سخت به فکر رفت. ناچار پیش پادشاه رفت و همه چیز رو براش گفت. شاه از شنیدن حرف وزیر از خوشحالی بیهدش وزیر رو محکم در آغوش کشید. آخه اون از برگشتان دختر گم شدش مطلعه شده بود. بعد بلاف خاصله، برای دیدن دختر عزیزش به خونه وزیر رفت. دختر درباره پیسری که اون رو نجات داده بود و حالا حین شکار گم شده بود چیزهایی گفت. پادشاه چند مأمور رو برای پیدا کردن شاهزاده فرستاد. اونها هم اون رو در حالی که با سعید زیر سایه ای درختی استراحت میکردن پیدا کردن و هر دوی اونها رو به حضور شاه بردن. توی قصر پادشاه به گرمی از اونها پذیرایی کرد و از اونها خواست که توی قصر زندگی کنند. عصر اون روز وقتی که همه سرگرم برگزاری جشن بودن شاهزاده ملکه دختر رویاهاش یعنی حسانارا را رو دید. حسانا رو تمام ماجرا رو از قاخرش شنیده بود و شجاعت بی حد و حصر شاهزاده رو تحسین میکرد و توی این نگاه دل باخته شاهزاده شد. پادشاه کم کم از این شاهزاده غریبه خوشش اومد. پس با ازدواج دخترش و اون موافقت کرد و بعد از گذشت چند ماه شادی آور توی آراد شاهزاده ملتمه سانه از پادشاه اجازه برگشتن خواست. اون قصد داشت به همراه زنش به سرزمین پدرش برگرده. پادشاه بعد از کمی شک و تردید موافقت کرد چون که میخواست اون رو جانشین خودش کنه بعد پادشاه مقدار زیادی طلا و جواهر به شاهزاده داد و با هر دوی اونها خداحافظی کرد ولی قبل از حرکت و ترک اونجا شاهزاده دختر دیگه شاه یعنی خواهر زنش رو برای سعید خواستگاری کرد با این خواستگاری هم موافقت شد و عروسی اونها با شکوه جلال زیادی برگزار شد. حالا هر دو جفت به سمت خونه به حرکت در اومدن و موقع ورود به کشورشون از اونها استقبال گرمی شد. آخه وزیر فکر میکرد که پسرش مرده. وقتی که از برگشتن پسرش بی‌نهایت خوشحال شده بود، جشن عمومی توی کشور اعلام کرد و از اون به بعد هر دو جفت با خوبی و خوشی کنار هم زندگی کردند. کانال تلگرامی هزار افسان داستان‌های افسانه‌ای صوتی. نشانی کانال تلگرامی t.mi slash مهران دوستیتی t نقطه e ای نشانی ویبلاگ ما m e s BFA نقط مهران دوستی. blogva.com کانال تلگرامی هزار افسان به مدیریت محمد جواد دوستی.